سحیفه معرفت شرح دعای هفته سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه ششم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله و نبینا و آله تیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارزی همون گونه که مستحضرید این سلسله مباحث رو بنا گذاشتیم با الهام از صحیفه سجادیه مولایمون امام سجاد سلام الله علیه در زمینه زندگی انسانی رفتار صحیح بشری پی بگیریم چه کنیم که رفتار ما رفتار درست انسانی باشد و از عمری که خداوند به ما عنایت کرده آن بهره و ثمراتی را که مورد نظر خود حضرت حق است عائد ما بگردد ان الله دیدیم که همه این حرف در نفس انسانی و حالاتی که در نفس ایجاد می شود خلاصه میگردد اگر نفس حیوانی شد نفس شیطانی شد مسلما حرکات و اعمال این انسان حیوانی و شیطانی خواهد بود ولی اگر نفس را نفس روحانی نفس ملکوتی نفس رحمانی قرار دادیم مسلما آثاری هم که از این نفس بروز می کند به اختزای خودش همونگونه خواهد شد به قول معروف از کوزه برون ترابد هر اونچه دروس. پس همه جدیت ها و تلاش و کوشش ما باید در این زمینه باشد که نفسمون را نفس عالی انسانی قرار بدیم در این راستا دچار مشکل و مانعی هستیم که سر راه ما قرار میگیرد و نمیگذارد مثال ارز کنم ما تمام مقدمات کلاس رفتن رو فراهم میکنیم کلاس هست دانشکده دائر است اساتید سر کلاس آمادگی تدریس دارند. کتاب و جزوات و وسائل آموزشی مفید رو هم در اختیار ما قرار دادن، هم در اختیار اون اساتید تا سر کلاس که بهره لازم رو ببریم. اما وقتی که از در منزل خارج میشویم، شویم، بین راه یک نه دو نه بلکه چندین مانع خطرناک قرار میگیرد. و هر کدام می‌گوشند با لتایف الهیال با مکرها و نیرنگها ما را بفریبند به جای اینکه سر کلاس درس و اون استاد برویم در محافل و مجالس دیگری که ما را از علم و دانش و فهم و درک باز می‌دارد شرکت بجویم. اینجا لازمه موفقیت چیست؟ اینهایی که سر راه قرار گرفتند و نمی گذارن ما به اون کلاس برویم اینها رو بشناسیم اول معرفت لازمه خود این شناخت اگر نشناسیم و ندانیم که اینها دشمنن اینها دوست نیستن دشمنانی که در لباس دوست خودشون رو زدند و میخوان ما را بفریبند و از اون هدف مفید باز بدارن طبیعتا برخورد ما با اونها برخورد یک انسانی که نسبت به دشمن و مانع تعالی حساسیت نشون میده نخواهد بود این اولین قدم قدم دوم حال که شناختیم اینها مانعا، نسبت به های اونها و نسبت به دستورات و اوامر اونها باید حساسیت نشون بدیم اگر هر ای در خلاف جهت اون معلم و استاد معین کردن ندیده بگیریم و اون را کنار بزنیم به قول مولوی صد هزاران دام و دانست ای خدا ما چون مرغانی حریس و بینوا دم به دم پا... دام نوبیم هر یکی گر باز و سی شویم. میرهانی می رهانی هر دمی را و باز سوی دامی می رویم. ای بی نیاز ما در این انبان گندم میکنیم. گندم جمع آمده گم میکنیم کنیم می ما آخر به هوش. که این خلال در گندم است از مکر موش موش تا انبان ما لانه زده است در فنش انبان ما ویران شده است اولی جان دفع شر موش کن بعد از اون در جمع گندم کوش کن اگه ما این موانع رو نشناسیم و کنار نزنیم نمی توانیم رشد کنیم هم در قرآن کریم هم در سیره معصومین علیهم السلام به صحیفه سجادیه که مورد بحث ماست این نکته رو هی به ما تذکر میدن شیطان راهزن است شیطان دشمن تعالی بشریت است اون کلاس تعالی که کلاس عبودیت حضرت حق است برای ما قرار داده شده شیطان و عوامل شیطانی مثل اون راه زنها و فریبکارانیان که در مسیر حرکت ما به سوی اون مقصد ایستادهاند و میخواهند ما را از اون راه برگردانند و نگذارند به اون مقصد نائل شویم ما یک این معنا را بدانیم اگر این رو دانستیم توجه پیدا میکنیم که دشمن خطرناکی به نام شیطان داریم و نسبت به وسوسعای شیطان حساس میشیم دومی اگر این رو فهمیدیم این نکتر رو توجه و پیدا کنیم چه عواملی این راهزن رو از ما دور میکنه چه عواملی اینها رو بادار میکنه از ما قطع امید کند اونها رو پیدا کنیم امام سجاد علیه صلات و السلام در این دعای هیوده صحیفه سجادیه به این دو مطلب مرتب توجه میدم. یک شیطان است که میخواد شما رو بفریبه نمونه هایی که تا حالا از نحوه راهزنی شیطان حضرت به ما معرفی کردن نزغ، کید، مکاعده امانی ایجاد میکنه و میخواد به اون امانی اطمینان پیدا کنیم وعده های دروغ میده نفع های مجازی رو به ما نفع می نمایانه آلت های سیدی قرار میده که به وسیله او ما رو سید کنه در نفسش این طمع رو داره که با گمراه کردن از اطاعت حضرت حق ما سر از اطاعت باز بداریم با وادار کردن به معصیت سعی میکنه تن به خاری بدیم اموری را که ناپسند در نظر ما زیبا جلوه میده ادامه این او انیس وقلع علینا ماکرها علینا یا اینکه سنگین گران و مهم جلوه بده بر ما اون چرا که در نظر ما شیطان ناپسندش کرده یعنی چی شیطان چه چیزی رو تبدیل به اکراه و ناپسندی میکنه؟ اونچه اون چرا که خدا دوست میدارد شیطان اکراه داره. اونی که خدا نمیپسندد دوست نداره شیطان او رو دوست می داره. لذا ممکنه اگر ما قلبمون شیطانی شد ما اینجوری بشیم. ان انتکرهو شیئا و هوا خیر رو لکن. و اصا تهب بو شیئا و هوا شر رو لکن. یعنی چه بسا میشه ما یه چیزایی رو اکراه ببرزیم دوست نداریم نخواهیم نپسندیم با اینکه که ما در همونه چه بسا چیزایی رو ما شر بدونیم چیزایی رو ما دوست بداریم چیزایی رو که محبت ببرزیم ولی اصلا شر ما در او باشه بنوان مثال بنده بخوام تمبلی کنم حوصرانی کنم رانی کنم بر مبنای قرائز حیوانی اینا خوشاینده اینها ها نسبت به وجود نفسانی من و وجود حیوانی من گرایش و علاقه به او وجود داره. اما بر مبنای عقل، ایمان، معرفت، حضرت حق اینا رو نمیپسندم. اگه من بخوام با دید هوای نفس برم باید نسبت به اون چرا که خدا میپسنده اکرادش داشته باشم. مثلا بر مبنای هوای نفس نماز خوشایند نیست. بر مبنای شهوترانی حیاب و افت خوشایند نیست. بر مبنای مالدوستی رشوه نگرفتن خوشایند نیست بلکه رشوه گرفتن میشه خوشایند خب حالا شیطان میخواد چی کنه او انیس قُل علینا ما کرها الینا چیزایی که شیطان وادار کرده ما ازو اکرا داشته باشیم مثل چی صداقت میگه الان یه حرفی از من سوالی از من میپرسن من اگر بخوام راست بگم به نظر میاد یه زرری میکنم خب شیطان میگه سنگین نگو راستی رو داره این راستگویی رو برای من سقیل جلبه میده موقع عبادت خاص رسیده نماز صبح نماز ظهر باید نمازم بخونم شیطان داره گرون نشون میده یه اکراهی در من نسبت به این اطاعت ایجاد کرده اون حال زوق و شوق و شعفی که نسبت به این عمل باید من داشته باشم اینو من پیدا نکنم خب پس این عامل گرون بودن بر من چیه؟ اجازه بدید در قالب مثال بگم فرض کنید بنده به شدت علاقمند به یک درس و کلاس و استادی بودم رفتم در این کلاس شرکت جستم با علاقه مشغول مطالعه و درس شدند اما چهار تا دوست ناباب دور منو گرفتن اونقدر راجب درس خوندن بدگویی کردن اونقدر منو از علم و تحصیل زده کردن یک انگیزه های دیگر هوسرانی شهبترانی بازیگوشی رفتن مثلا با یک کلکی پول درآوردن اینا رو برای من جلوه دادند حالا تا به من میگن درس خوندن بر من سگینه دیگه آمادگی درس خوندن ندارم به من میگن مطالعه دیگه حالشو ندارم به من میگن بیا بریم در فلان کتاب خونه بشینیم این کتاب ها رو برق بزنیم دیگه نشاد در من نیست چرا؟ چون کاری کردم اون چیزی که بنا بود برای من زیبا باشه برای من زشت جلوه کرد اونی که بنا بود من نسبت به او ذوق و شوق داشته باشم حالا اکراه دارم امام سجاد علیه السلام میفرماید خدایا به تو پناه میبرم از این که شیطان کاری بکنه با من این تمع رو پیدا کنه که بتونه در من اینجوری نفوذ کنه او ان یسقل علینا یا اینکه اینجوری بشه بر ما سقیل بشه بر ما سنگین باشه بر ما گران بیاد ما کر حیله اون چیزایی رو که برای ما شیطان یه جوری انجام داد که حالا دیگه اکراه داریم یعنی مثلا شیطان ما رو بادار کرد به نماز خوندن اکراه پیدا کنیم حالا نماز خوندن برای ما سنگین میشه شیطان کاری کرد روزه گرفتن رو من دشوار بدونم حالا روزه گرفتن بر من سنگین بیاد خدایا نمیخوام اینجوری بشم یعنی این توجه رو دارم که شیطان میخواد در من این حالت ایجاد کنه حالا که اینه ببینید در ادامه چی میگه الله مخ سعه انا به بسیار نکته ظریف و قشنگی در این فرصت محدودی که ما داریم در ادامه این جلسه بحثمون تقاضا دارم این نکته رو دقت کنید کلمه اللهم مخ به او ترد کردن و دورنمودنی است که با یک نوع توهین و حقارت همراهه و معمولا برای رندن سگ به کار میبرن. ما مثلا اگه میخوایم بیه انسانی بگیم از کنار من برو یه وقت میگیم لطفا خواهش میکنم تشبه برید اون طرف تر. خب این یک بیان معدبانیه یه وقت ممکنه به کسی بگیم آقا لطف کنید برید اونور. بر. یه وقت میگم آقا اون طرف‌تر واسا جلو منو نگیر اینا همه اینو بیانهای به شدت و زحف از نظر ادبه اما اگر بخوایم یه گاو رو برانی میگیم های اما به انسان هیچ وقت نمیگیم های این توهینه حالا سگ رو بخوایم برانی میگیم چخ چخو او از این ماده است وقتی میخوان سگ رو ترد کنن و دور کنن کلمه چه خوب کار میبرن که در زبان عربی این رو با کلمه خسعه کار میبرن اینجا فرموده اللهم مقصه خدای از تو میخوام اینو مثل سگی که دور میکنن چه خوبش میگن رد میکنن بیا حالت بدی اینجوره دور کنی ابلیس رو اننا از من اما به چی؟ یعنی من اینجا بشینم، هیچ کاری نکنم، هیچ حرکتی نداشته باشم، فقط بگم خدا تو شیطان از من دور کن، بران. اونم با این کلمه ای که یعنی انقدر من توجه دارم. ببینید یه وقت هست یه بوته گلی سر راه منه. نمیگم اینو بکنید بندازید دور. اما یه خاری سر راه منه. میگم اینو بکنید بندازید دور. چون بین خار و گل من تفاوت میفهمم من شیطان رو با این توضیحات درون حد شناختم. همونطوری که یک سگ درنده هاره خطرناک اگر سر راه من قرار گرفت با تمام شدت میگم چه خوب یا از شما خواهش میکنم اینو چخونید، کنید رد کنید دور کنید میگه خدایا من شیطان اینجوری میشناسم و میخوام اینو دور کنی اما نه اینکه فقط میگم شما دور کن میگه به عبادتک یعنی عبادت تو انقدر مهم است و اگر تو دستور به عبادت دادی این عبادت میتونه شیطان رو همون گونه که یک انسان با یک چوبی با یک تازیانه با یک اسلحه‌ای به دست میگیره یک سگ هار خطرناک رو از خودش دور میکنه عبادتی که تو برای من مقرر کردی من به سبب و وسیله این عبادت تو می توانم شیطان را دور کنم پس یعنی خدایا پناه می برم به تو از این که شیطان در من نفوذ کنه بلکه از تو می خوام شیطان از من دور کنی یعنی پناه می برم به عبادت تو یعنی خدایا می خوام توفیق بدی من اهل عبادت بشم پس به عبادت باید حساسیت نشون داد همون طوری که در یک دو فراز قبل مسئله که ما به مناسبت آیه 21 سوره بقره رو هم شاهد خوندیم یا ایه اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون پس عبادت پروردگار رو دست کم نگیریم ببینید اگر من توی جادهی منتهی میشه به یک مقصدی که اون مقصد برای من مهمه حتی مقاصد معمولی زندگی روزمره ما مثلا بنده دارم میرم ای که توش پول در میارم. میرم دانشگاهی که توش درس میدم. میرم تو مکانی که در اونجای کار خاصی دارم. این مسیر رو با طی کنم. حالا سر راه من یک سگ هار درنده خطرناکی قرار گرفته که اگه گاز بگیره بیماری هاری میگیرم. اگر به من حمله کنه منو تیکه تیکه میکنه. خب شما هم به بنده میفرمایید که چون شما دارید میرید فلان مقصد سر رای سگه هست من یک مثلا جرقه آتش زنه یه یعنی نمیدونم ماده منفجره ای بد میدم اینو چکون بدی منفجر میشه تا منفجر شد این سگ در میره من قدر این ماده منفجره رو میدونم یا نه قدر این ای که الان یک جرقه بزنه یه شعله بزنه یا یک انفجاری بده یا یک صدایی بده نمیدونم هر ابزاری که این سگه ها رو از من دور کنه من چقدر به این علاقه من می شم؟ گوینده خداست خدای من به من میگه میخوای از نزغ شیطان در امان باشی پناه به من ببر پناه به من بردن ببین من به تو چی گفتم من گفتم عبادت کن پس عبادت تو همون ماده منفجره ای است که شیطان سگهار را سر راه من اخساو میکنه دورش میکنه میگه برو چه خو از من رد شو لذا من عبادت رو باید به این چشم نگاه کنم نه اینکه نسبت به عبادت اکراه داشته باشم اگر به من بگی ماده منفجره رو به تو میدم سگ ها رو دور کنه من اکرا دارم از این یا میگم دست مریزاد متشکرم که وسیله به من دادی من این راه رو باید طی کنم این مانع باز رو از سر راه هم بگیرم لذا اون هایی که به این نکته توجه میکنن عبادت رو زیبا می دانن و عشق می‌ورزند به عبادت جناب عبیس غرنی این یار امیرالمؤمنین و این عاشق پیغمبر اسلام با اون همه روحیه عبادت و تقوا میگه دوست داشتم همه دنیا را زنده بودم و همه را به یک سجده در عبادت پروردگار به پایان می بردم اینا چی فهمیدند از عبادت عبادت عامل قربه عبادت عامل سعوده عبادت عامل دور راندن شیطان عبادت عامل هموار کردن راه تعالی عبادت عامل ترقی و قرب حضرت حق ترقی و قرب به حضرت حقه لذا میگه خدایا از تو میخوام اللهم مخصحو خدای از تو میخوام برانی دورش کنی ان از من و این کلمه اللهم مخصحو خسعه رو به کار برده یعنی همونطوری که ما سگ رو میگیم چه خبر رو دور شو حق نداری نزدیک من بیاد، اینجوری خود از تو میخوام شیطان مثل یک درنده هاری از من دور کنی اما به عبادتک یعنی روحیه عبادت تو خدایا کمک کن بیشتر داشته باشم پس با این بیان صحیفه اگر ما میخوایم شیطان در ما نفوذ نکنه حالت نفسانی ما حالت رحمانی بشه به عبادت حساس تر بشیم. از 24 ساعت شبان روز به خوابمون میرسیم به خوراکمون میرسیم اینقدر کار و تلاش و روزمره تو هر زمینه ای که ما بناس فعالیت کنیم داریم یک مقدار از این وقت رو اختصاص بدیم برای رابطه عبودیت با حضرت حق اون هم با عشق با علاقه و وقت در ادامهش بیانی داره حضرت که انشالله باید مفصلا در جلسات بعدی بهش برسیم و اک ها به دعو بنافی محبتت میگه این عبادت و این رابطه من با تو باید رابطه باشه بر اساس محبت دلدادگی و دوستی که بتونه اون آثارشو باقی بگذاره الله که انشاءالله این فراز رو باید بعدن نسبتا مفصل مورد بحث قرار بدیم و سلام علیکم